کتاب افثانه ها و قصه های ملل داستان هایی برای نوجوانان ترجمه دکتر محمد مهدی پورکریم به سفارش کانال تلگرامی هزار افسان، به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفسه این داستان شاهزاده. در زمان خیلی قدیم پادشاهی بود که سه پسر داشت وقتی پسرها بزرگ شدند روزی پادشاه اونا رو صدا زد و گفت بچهها، دلم میخواست پیش از اون که پیر میشدم و قدرت و توانایی خودمو از دست میدادم شما ازدواج میکردید و من میتونستم بچه های شما یا نوههای پسر و دخترم رو میدیدم هر سه پسر به پدرشان گفتند پدرجان هر طور که شما دستور بدید ما عمل خواهیم کرد. اول به ما بگو که با چه دخترانی باید ازدواج کنیم. پدر گفت حالا که این شد تیر و کمانوی خود را بردارید و به صحرا را برید. هر کدوم از شما باید تیری رها کنه. هر جا اون تیر فرود اومد سرنوشت ازدواج شما در همون تعیین خواهد شد. پسران شاه در مقابل پدر تعظیم کردند. و تیرها و کمانهای خود را برداشتند و به طرف دشت همواری حرکت کردند. کمانها رو کشیدند و تیر انداختند. تیر پسر بزرگتر در حیات شخص ثروتمندی افتاد و دختر ثروتمند تیر را برداشت. تیر پسر دوم در حیات یه دختر تاجر افتاد و دختر تاجر اون برداشت. ولی تیر پسر کوچکتر که نامش ایوان بود به طرف هوا رفت و اوج گرفت و معلوم نبود در چه جایی به زمین می نشیند بنابراین ایوان اونقدر راه رفت تا جای فرود آمدن تیر رو فهمید و به کنار برکهی رسید و قرباقهی رو دید که تیر رو در میان دو پاهاش محکم گرفته ایوان گفت آهای قورباغه، تیر رو به من بده قورباغه جواب داد بیا با من ازدواج کن ایوان گفت آخه این چه پیشنهادیه که به من میکنی من چطور میتونم با قورباغه ازدواج کنم غورباغه جواب داد اما بدون که سرنوشت تو همینه بیا قبول کن و به من اعتماد داشته باش ایوان از این پیشامد سخت ناراحت شد ولی چکار میتونست بکنه ناچار غورباغه را برداشت و به خانه رفت پادشاه سه جشن بزرگ بر پا ساخت دختر ثروتمند را برای پسر بزرگش و دختر تاجر را برای پسر دوم و غورباغه را هم برای ایوان بیچاره در نظر گرفت و با هم ازدواج کردند بعد از پایان عروسی اونا رو خواست و گفت حالا باید بدونم که کدام یکی از زنای شما زرنگتر و دارتره. برای این کار لازمه که هر یکی از اونا تا فردا پیراهنی برای من بدوزه هر پسر در مقابل پدر تعظیم کردند و خارج شدند ایوان به خونه اومد گوشه ای نشست و سرش رو بین دو دستش گرفت و به فکر فرو رفت بورباغه در حالی که در کف اتاق به این طرف و اون طرف جست و خیز کرد، ازش پرسید ایوان چرا سرتو میون دستداد گرفتی مگه ناراحتی ایوان جواب داد پدرم گفته تا فردا باید براش یه پیراهن بدوزم؟ ابورباغه جواب داد این که اهمیتی نداره ناراحت نشو برو بخواب کارا درست میشه ایوان از جا برخاست و روی رختخوابش قرار گرفت و به استراحت پرداخت او باقا هم با یک جس روی پله قرار گرفت و پوستش رو چون پیراهنی از تن درآورد و به صورت زن زیبایی به نام واسیلیا که در داستانها و افسانهها کمتر نظیر او رو میششنید ظاهر گشت. بعد دو دستش رو به صدا در آورد و فریاد زد. خدمتگزاران پرستاران من، عجله کنید و حاضر بشید و تا صبح فردا پیراهن زیبایی مثل پیراهنی که پدرم همیشه به تن می‌کرد بدوزید و پیش من بیارید صبح خیلی زود وقتی ایوان از خواب برخاست اور رو در کف اتاق دید و پیراهن تازه کنار میز مشاهده کرد ایوان با خوشحالی پیراهن رو میان دستمالی گذاشت و پیش پدرش رفت پادشاه پیراهنهایی را که پسرانش آورده بودند به دقت نگاه کرد اول پیراهنی رو که عروس پسر بزرگش دوخته بود برداشت و گفت این پیراهن برای کسی خوبه که در کل به خرابهی زندگی میکنه پسر دوم هم پیراهنش رو باز کرد و پیش پدر گذاشت پادشاه گفت این پیراهن هم برای کسی خوبه که بعد از حمام اونو رو کنه بعد ایوان پیراهنش رو که با بهترین نقش اون هم با نخهای طلایی و نقره ای زینت یافته بود پیش پدر باز کرد پادشاه اونو نگاه کرد و گفت ها اینیه پیراهن درسته حسابیه میشه در روزهای جشن و شادمانی اونو به کرد دو برادر از این موضوع خیلی ناراحت شدند وقتی به منزل برمیگشتند در راه با تعجب به هم گفتند هم، واقعا ما آدم بسیار ساده بودیم و زن ایوانو مسخره میکردیم به نظر ما که اون غورباغه نیست بلکه یک جادوگره پادشاه دوباره پسرهاش رو خواست و گفت من میل داشتم که زنهای شما فردا برای من نان بپزند تا بفهمم دستپخت کدومیشون بهتره ایوان ناراحت شد و سرش رو به زیر انداخت به خونه اومد قرباغه به او گفت چرا ناراحتی ایوان جواب داد پدرم دستور رو داده که باید نون بپزی تا فردا صبح بهش نشون بدم و دستپخت تو رو ببینه قرباغه گفت ایوان هیچ ناراحت نشو برو زود بخواب تمام کارا درست میشه زنهای دو برادر که با دوختن پیراهنها پیش پادشاه شده بودند پیرزنی رو به خانه ایوان فرستادند تا ببینند به چه وسیله قورباغه خمیر تهیه میکنه و نون میپزه اما قورباغه حقوق بازتر بود و همه چیزو پیش بینی میکرد فوراً آرد رو در ظرف آردگیری ریخت و به صورت خمیری درآورد. پیرزن با شتاب برگشت و اون را دیده بود برای خانمش تعریف کرد اون دو زن هم خمیری رو که تهیه دیده بودند به صورت خمیری در آوردند و میون اجاق قرار دادند ارباقه با یه جس روی پله قرار گرفت و به صورت واسیلیا ظاهر شد و دستاش رو به صدا در آورد و گفت پرستاران خدمت من عجله کنید حاضر بشید برای فردانون سفید و خوبی مثل همون نونایی که توی خونه پدرم میخوردم بپزید موقعی که ایوان صبح زود از خواب برخاست روی میز اتاقش نان اشتهاوری رو دید که روی اون با نقشهای بسیار زیبایی زینت یافته بود ایوان بسیار خوشحال شد. نون رو میان دستمالی پیچید و پیش پدرش رفت. پادشاه نونهایی رو که دو پسر اولیش آورده بودن نگاه کرد. نونا کسیف و نفرت آور به نظر میرسیدند. چون نونای اون دو پسر اول همونطور که پیرزن خبر برده بود عمل کرده و خمیر و میون اجاق قرار داده بودند. پادشاه نونای دو پسر اول رو در دست گرفت و نگاه کرد و ناراحت شد. اما وقتی نونی رو که ایوان تیه کرده بود دید، خیلی خوشحال شد و فریاد زد این شاد نون چون در روزهای شادی و جشن میشه اونو خورد و جلوی مهمون گذاشت بعد پادشاه دستور داد تا پسرانش به همراه زنهای خودشون در یه مهمانی بزرگ که در قصری تشکیل میشد حاضر بشن ایوان باز هم در حالی که سرفکنده بود با ناراحتی به خونش رفت باغه روی کف اتاق جست میزد. پرسید ایوان باز چرا ناراحتی مگه پدرت از تو راضی نیست قورباغه قورباغه چرا ناراحت نباشم پدرم دستور داده تا فردا به همراه تو در مهمونی حاضر بشم آخه تو مهمونی چطور میتونم تو رو به مردم نشون بدم من از خجالت آب میشم قورباغه جواب داد ناراحت نباش تو تنها به مهمونی میری بعد من خودم میام وقتی صدای رعد و برق رو شنیدی به بترسی اگه ازت پرسیدن این صدا چیه بگو این قورباغه کوچیک منه که از راه میرسه و در میون جعبه ای نشسته ایوان تنها به مهمونی رفت اما دو برادر دیگه با زنهای خود که لباسهای فاخری به تن داشتند و خود را آرایش کرده بودند در مجلس حاضر شدند همه اونا می‌خندیدند و ایوان رو مسخره میکردند و میپرسیدند راستی ایوان چرا تنها اومدی تو میتونستی زن تو میون دستمالی بپیچی و با خودت بیاری اما این زن زیبا رو از کجا به دست آوردی بدون شک رو در کنار برکی پیدا کردی پادشاه و پسران و زنهای اونا و مهمونهای دیگه در مقابل میزهایی که روی اونا رو پوشهای قشنگی بود نشستند و غذا خوردند. ناگهان صدای شدید رعد و برقی که تمام قصر رو تکان میداد به گوش رسید. مهمانان با وحشت و ناراحتی از جا برخاستند. ولی ایوان به اونا گفت: مهمانان عزیز، به هیچ وجه نترسید. این قورباغه کوچیک منه که به قصر نزدیک میشه و در یه جعبه نشسته. در این هنگام کالسکه زرینی که با کمک شش اسب سفید کشیده میشد در مقابل درهای قصر توقف کرد. واسیلیا با لباس ای رنگی که با ستاره های زینتی آفته بود ظاهر شد. روی سرش نیم تاجی چشم چشم میخورد. به قدری زیبا و قشنگ به نظر می رسید که وصف اون را فقط در افسانه ها و داستان ها شنید. واسیلیا دست ایوان را گرفت و به همراه او کنار میز نشست. تمام کسانی که در اون مجلس به خوردن و نوشیدن مشغول بودند از دیدن او غرق در تعجب شدند. واسیلیا یک گیلاس نوشیدنی برداشت، مقداری از اون رو سر کشید و بقیهش رو در آستین لباسش ریخت. بعد، قطعه گوشت پرنده سرخ شدهای رو در ظرفی ریخت و وقتی گوشتش رو خورد، استخونهاش رو در آستینش جا داد. عروس های دیگه شاه وقتی اون رو دیدن که این کارا رو انجام میده، همونا هم, هم کار را انجام دادن. بعد از غذا همه رقصیدند و واسیلیا دست ایوان را گرفت و به وسط سالن اومد و با او به رقصیدن پرداخت و چرخ خورد و چرخ خورد به طوری که تمام مهمان دیگه براش دست زدند و از حرکت دست چپش دریاچه ای ظاهر شد و از حرکت دست راستش پرنده های سفیدی به پرواز در پادشاه و همه افراد از دیدن اونا خوشحال شدند و شادی کردند در این موقع عروس‌های دیگه پادشاه رقصیدند و شراب آستین‌های لباسشون همه جا پخ شد و لباس های قیمتی و زیبایی مهمان‌های دیگه را هم کثیف کرد و با تکان دادن دست‌هاشون استخوان‌ها به هوا پرت گشت و یکی از اونا به چشم پادشاه خورد و بهش صدمه زد پادشاه با خشم و غضب عروس بی‌حیا را از اونجا دور ساخت در این هنگام بیان که کسی متوجه بشه ایوان از سالن خارج شد و به خونه‌اش رفت و در خانه پوست غورواقع ای رو دید و بلافاصله اونو سوزوند واصلی وقتی به منزل برگشت در صدت شد پوستش رو پیدا کنه. اما هرچی گشت نتیجه نگرفت. خیلی ناراحت شد و با ناامیدی روی نیمکدی نشست و به ایوان گفت: افسوس ایوان: اگه سه روزم صبر میکردی اون وقت من برای همیشه پیشت میمونم ولی حالا باید برم خدا حافظ و برای پیدا کردن من باید به اون طرف دریاها و سرزمینها سفر کنی. و جای منو از جادوگری که اسمش جاویده بپرسی واسیلیا به صورت پرنده خاکستری رنگی در اومد و از پنجری اتاق خارج شد ایوان مدتها گریه کرد ولی ناچار به سوی سرزمین دوردست به راه افتاد تا زن خودش واسیلیا رو پیدا کنه شب و روز راه میرفت و گاهی هم بر اثر خستگی در گوشه و کنار بیابونا به استراحت می پرداخت کفش و لباس به کلی پاره شده بودند در یکی از روزها با پیرمرد بسیار ناتوانی روبرو شد به او سلام داد پیرمرد از او پرسید چرا اینجا اومدی؟ کجا میری؟ ایوان داستان غمانگیزش را از اول تا آخر براش شرح داد پیرمرد بهش گفت آه ایوان چرا پوست با را سوزوندی؟ واسیلیا خیلی زیباست و از پدرش داناتره و در یکی از روزها پدرش عصبانی شد و برای اینکه واسیلیا رو تنبیه کنه، او رو به صورت قورباغه‌ای در آورد. اوه چه کار عجیبی! حالا این جسم گرد رو بهت میدم. هر جا که حرکت میکنه، باید دنبالش راه بیفتی. ایوان از پیرمرد تشکر کرد و اون جسم گرد رو تعقیب کرد. جسم گرد به حرکت درآمد و ایوان هم به دنبالش به راه افتاد. اما در این هنگام در وسط مزرعه با خرسی روبرو شد که خواست بکشه. اما اموخرس به زبان اومد و گفت ایوان منو نکش روزی به دردت میخورم ایوان به رحم اومد و او رو نکشت و به راه خودش ادامه داد باز هم در یکی از روزها با یه مرغابی روبرو شد مرغابی به زبون اومد و گفت ایوان منو نکش روزی به دردت میخورم ایوان به مرغابی رحم کرد و به راه خودش ادامه داد مجددا در بین راه با خرگوشی روبرو شد که به سرعت میدوید ایوان خواست به سوی تیری خالی کنه اما خرگوش هم به زبان اومد و گفت: "مرا رو نکش. روزی به دردت میخورم ایوان به خرگوش هم رحم کرد و به راه خودش ادامه داد. سپس به کنار دریایی رسید، روی شنی ماهی افتاده بود که به زحمت نفس میکشید ماهی هم مثل یه انسان به زبان اومد و گفت: "آه ایوان، رحم داشته باش و منو در میون دریا بنداز." ایوان ماهی رو به دریا انداخت و در کنار ساحل به راه خودش ادامه داد. اون جسم گرد گاهی تند و گاهی به کندی حرکت میکرد و ایوان رو به دنبال خودش میکشید. ناگهان بالای یکی از تپه ها کلبهی به نظر رسید که روی یه پایه قرار داشت و به دور خودش میگشت. ایوان گفت به یه کوچک، پشتت رو به جنگل و روت رو به ایوان کن. ایوان داخل کلبه شد. روی بخاری جادوگر بابا پاگا نشسته بود. دندانهای بزرگ نیشدارش به کف اتاق میرسید و دماغ خمیده و درازش به سقف میخورد اون وقت پرسید: ای جوان نجیب از من چی میخوای؟ آیا میخوای تا من کاری برات انجام بدم؟ یا از چیزی ترسیدی و به من پناه آوردی؟ ایوان گفت: بذار کمی گرم بشم و غذا بخورم اون وقت جریان خودمو برات تعریف می‌کنم. بابا پاکا اونو گرم کرد و غذا به داد و وسایل استراحتش رو فراهم ساخت ایوان شرح داد که برای پیدا کردن زنش واسیلیا به اونجا اومده بابا پاگا گفت فهمیدم زن تو پیش جادوگر جاویده پیدا کردن او بسیار مشکله و کشتن جادوگر به این سادگی امکان پذیر نیست اما مرگش به سر یه سوزن بست است این سوزن در تخم مرقی قرار داره این تخم مرغ در بدن یه مرقابیه و این مرقابی در بدن خرگوشیه و این خرگوش روی صندوق سنگی نشسته و این صندوق بالای درخت بلوته جادوگر جاوید نیز این درخت رو مثل تخم چشمش مواظبت می‌کنه. در اون شب ایوان پیشه بابا پاگا موند و روز بعد جادوگر درخت بلوط بزرگی را از دور بهش نشون داد. ایوان گاهی با عجله و گاهی آرام حرکت می‌کرد تا به اون درخت بلوت که از وسط اون صدایی به گوش می‌رسید نزدیک شد. روی درخت صندوقی قرار داشت که به دست آوردن اون کار بسیار مشکلی بود. ناگهان خرسی که معلوم نشد از کجا اومده پیدا شد. و اون درخت بزرگ رو به شدت تکان داد و صندوق بر روی زمین افتاد و شکست. خرگوشی از میان صندوق خارج شد و به سرعت پا به فرار گذاشت. اما خرگوش دیگری هم به دنبالش حرکت کرد و او را گرفت و شکمش را پاره کرد. یه مرغابی از شکم خرگوش خارج شد و به هوا پرید و به آسمان رفت. اما مرغابی دیگری خود را رو روی مرغابی اولی پرت کرد و به این ترتیب تخم مرغی از شکمش خارج شد و به وسط دریا سقوط کرد. ایوان خیلی ناراحت شد و عشقش جاری شد چون فکر نمیکرد که بتونه تخم مرغ از میان دریا پیدا کنه اما در همین اصلا یکی از ماهی ها در حالی که تخم مرغ لایه دندوناش قرار داشت با شناب ساحل نزدیک شد ایوان تخم مرغ را شکست و از میون اون سوزنی درآورد آورد و نوک اون رو خرد کرد جادوگر جاوید تلاش میکرد و دست و پا میزد اما تلاشش بیفایده بود چون ایوان به آرزوی خود رسیده بود ایوان به قصر سفید جادوگر جاوید داخل شد و واسیلیای عقل به طرف او دوید و بغلش کرد و بوسیدش بعد اون زن و شوهر به طرف خانه خودشون حرکت کردند و عمری رو در خوشی و سعادت زندگی کردند